اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون به راستی مؤمنان رستگار شدند الذین هم في صلاتهم خاشعون همان کسانی که در نمازشان خاش هستند والذین هم عن اللغو معرّبون و کسانی که از لغو روی کردند. والذین هم لزکات فاعلون و کسانی که زکات را انجام میدهند دهند و الذین هم حافظون و آنها که شرمگاهشان را حفظ می کنند الا علا ازواجهم هم او ما ملكت ایمانهم جز بر همسرانشان یا بر کنیزانشان، پس بیگمان اینان ملامت نمی شوند. هم پس کسی که فراتر از این بخواهد، آنانند که تجاوز والذنهم هُمْ وَد وَعَهْدِهِمْ و کسانی که امانتهایشان و عهد خود را رعایت میکنند والذنَهم على صالاوات يحافغون و کسانی که مواظبت مینمآیند اولئی هم الوارثون آری اینانند که بارسند الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَهُمْ فیها خَالِدُونَ کسانی که فردوس را ارث میبرند و دانه در آن خواهند ماند وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. وبراستی انسان را از چکیده ای از گل آفریدیم. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُقْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. سپس او را از نطفهای در قرارگاه اوست قرار دادیم سم خلقن النطفت علقتا فخلقنا العلقت مبغتا فخلقن المبغت, المبغت عظاما فکسون العظام لحمن سم انشأناه خلقا اخض فتبارك الله احسن الخالقين سپس نطفه را به صورت علقه گرداندیم آنگاه علقه را به صورت مزغه در آوردیم آنگاه مزغه را به صورت استخانهایی گردانیدین پس بر استخوان ها گوشت پوشاندین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 آنگاه یقینا شما روز قیامت برانگیخته میشوید ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلقافلن و به راستی بر فرازتان هفت آسمان آفریدیم و ما هرگز از آفرینش خود غافل نبودیم. وأنزلنا من السماء ماءا بقدر فأسكناه في الأرض وَإِنَّ على ذهاب به لقادرون واز آسمان آبی بهأندازهای معین نازل کردیم پس آن را در زمین جای دادیم و بيلغمان ما بر از بین بردن آن کاملا قادر هستیم فان شاءنا لكم به جنات من نخيل و اعناب لكم فيها فواكه كثيره لكم فيها فواكه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 و نیز درختی را که از تور سینا بیرون می آید که از آن روغن و نان خورش برای خورندگان فراهم می شود و این لکم فی الأنعام لعبره نسقی مما من فی بطونها ولكم فیها منافع کثیرت ومنها تأكلون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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تتقون و فبراستی ما نوح را به سوی قومش برستادیم پس او به آنها گفت ای قوم من الله را بپرستید که جز او معبودی برای شما نیست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 این مرد جز بشری همچون شما نیست که میخواهد بر شما برتری جوید اگر خدا میخواست همانا فرشتگانی را نازل میکرد ما هرگز چنین چیزی را در میان نیاکان خود ایم این هو الا رجل به جن فتربصوا به حتی او مرد دیوانه ای بیش نیست پس تا مدتی در باری او صبر کنید قال انصرنی ما نوح گفت پروردگارا مرا در برابر تکذیب آنها یاری کن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 فَإِذَا فا ثَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مِنَ الْقَوْمِ الظالمين. هنگامی که تو و همراهانت بر کشتی سوار شدید بگو ستایش برای است که ما را از قوم ستمگر نجات داد وقر رب أنزلنی منزلا مباركا وَأَنْتَ خَيْرُ المننزلین و نیز بگو پروردگارا ما را در منزلگاهی پر بركت فرود آور و تو بهترین فرود آورندگانی ان في ذلك لآيات وان كنتم لمبتلين بیگومان در این ماجرا نشانه هایی است و ما به راستی آزمایش می کنیم ثم انشانا من بعدهم قرنا اخرين پس از قوم دیگری را بعد از آنها به وجود آوردیم و ارسلنا رسولا منهم الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. پس از خودشان پیام بری در میان آنان فرستادیم که خدا را بپرستید که جز او معبودی برای شما نیست آیا پرهیز نمی‌کنید؟ و الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل من تأكلون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 و از آنچه که شما مینوشید مینوشد نوشد ولا این فق و اگر از بشری همچون خود اطاعت کردید یقینا شما زیان کار خواهید شد آيا عدوفم اذا إلى و کن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 آنچه به شما وعده داده می‌شود این نیست الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا و ما نحن بمبعوثین جز زندگی دنیوی ما چیزی نیست می‌میریم و زنده میشویم و هرگز برانگیخته نخواهیم شد ان هو إلا رجل افتری على الله كذبا وما نحن له بمؤمنین او جز مردی نیست که بر خدا دروغ بسته است و ما به او ایمان نمیآوریم قال ربی انصرنی بما كذبون یانبرشان گفت پروردگارا مرا در برابر تقضیب آنها یاری کن خدا بند فرمود به زودی پشیمان خواهند شد فأخذته مصطیحة بالحق فجعلناهم غفاء فبعدا للقوم الظالمین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 فَاتَّبَعْنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُدَّ لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ سپس پیامبران خود را پیاپی فرستادیم هرگاه پیامبری برای هدایت امتی میآمد او را تکذیب میکردند. پس ما نیز آنان را یکی پس از دیگری هلاک کردیم و مایه عبرت آیندگان قرار دادیم پس نابود باد قومی که ایمان نمی سل نه موسا و اخواهاون سپس موسا و برادرش هارون را با آیات خود و دلایل آشکار فرستادیم. إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ بسوی فرعون و اشراف قوم او ولی آنان تکبر کرده و مردمی گردنکش بودند فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون و گفتند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 و لقد آتینا موسا الكتاب لعلهم و به به موسا کتاب تورات دادیم باشد که آنان هدایت شوند و جعلن بن مریم و امه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 یا ایها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا انني بما تعملون علیم ای پیامبران از غذاهای پاکیزه بخورید و کار شایسته انجام دهید بی تردید من به آن چه انجام می دهید آگاهم وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتًا وَاحِدَتًا وَأَنَ رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ و بیگمان این امت شما امتی واحد است و من پرورگار شما هستم پس از من پرواه کنید فَتَقَطَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرَا كل حزب بما فرحون. اما آنان در میان خود در کار دینشان فرق فرقه و پراکنده شدهاند و هر گروهی به آنچه نزد خود دارد خوش است. في حتى حين. پس ای پیامبر آنان را تا مدتی در جهل و غفلتشان رها کن. انما به من مال و آیا گمان می کنند که مال و فرزندانی که به آنان می دهیم؟ نساعلهم فی الخيرات بل لا برای این است.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 والذين هم بايات ربهم يؤمنون وکسانی که به آیات پروردگارشان ایمان میآورند والذين هم بربهم لا یشرکون وکسانی که به پروردگارشان شرک نمیآورند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 اولائك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون آری اینانند که در نیکی شتاب می کنند و در انجام آن از دیگران پیشی می گیرند ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ینطق بالحق وهم لا يغلمون ما هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کنیم و نزد ما کتابی است که به حق سخن می گوید و به آنها هیچ ستمی نمی شود بل قلوبهم فی ظمره من هذا و لهم اعمال من دونی ذلك هم لها عاملون بلکه دلهای آنها از این کتاب در قفلت است با آنها جز این اعمال زشت دیگری نیز دارند که پیوسته آن را انجام می دهند حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم يجعرون. تا زمانی که متنعمان آنها را به عذاب گرفتار کنیم، در این هنگام آنها ناله و فریاد سر می دهند. لا اليوم من لا تنصرون به آنها گفته می شود، امروز فریاد نکنید، یقینا شما از سوی ما یاری نخواهید شد. قد كانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی احقابکم تنکسون به راستی آیات من پیوسته بر شما خوانده میشد. پس شما از حق اعراض می کردید و به عقب باز می گشتید در حالی که در برابر آن تکبر می کردید و در مجالس شبانی خود به بدگویی می پرداختید افلم یددبر القول امجاهم ما لم یعطی آباءهم الاولی آیا آنها در این گفتار نیندیشیدند یا اینکه چیزی برای آنان آمده که برای نیا نخستینشان خستینشان نیامده است ام لم یعرفو رسولهم فهم له منکرون یا اینکه پیام پیامبرشان را نشناخته پس او را انکار میکنند ام يقولون به بل <متّاب> جاءهم <تصفيق> <تصفيق> <متّاب> بالحق واكثرهم للحق <تصفيق> كارهون یا <يا> میگویند او جنون دارد چنین نیست بلکه او حق را برای آنها آورده است و بیشترشان از حق کراحت دارند ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون واذا حق از هوىس آنها انها پیروی کند آسمان و زمین و هر که در آنهاست تباه شوند، بلکه ما برای آنها پند و اندرزشان آبرده ایم پس آنها از پندشان روی گردانند ام تسألهم خرجا فخراج ربك که خیر و هو خیر الرادقین یا اینکه تو از آنها مزدی طلب میکنی، پس پاداش پروردگارت بهتر است و او بهترین روزی دهندگان است و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم و یقینا تو آنها را به راه راست دعوت میکنی و ان الذین لا یؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. و بیگمان کسانی که به آخرت ایمان ندارند از این راه راست منحرف هستند ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضرللجو فی طغیانهم یعمهون و اگر به آنها رحم كنیم و بلا و رنجی را که بدان گرفتارند از آنها برطرف سازیم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 و به درگاهش تزرع و بزاری نکردند حتی اذا فتحنا علیه بابا ذا عذاب شدید اذا هم مبلسون تا زمانی که دری از عذاب سخت به روی آنها گشودیم آنگاه آنها در آن به کلی نامید گردند وهو الذی أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشكرون و او کسیست که برای شما گوش و چشم و دل پدید آورد چه اندک سپاس میگذارید وهو الذی في الأرض وله تحشرون و او کسی است که شما را در زمین آفرید و پراکنده نمود و به سوی او گرد آورده میشوید او همان کسی است و, و می‌میراند و له اختلاف لیل و افلا تعقلون و او کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند و رفت و آمد شب و روز از آن اوست آیا نمی اندیشی؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون چنین نکردند بلکه آنها نیز مثل آنچه پیشینیان گفته بودند گفتند قالوا گفتند آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخوان های شدیم آیا دوباره برانگیخته میشویم؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين پرستی این وعده به ما و نیاکان ما از قبل داده شده این چیزی جز های پیشینیان نیست قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون ای پیامبر بگو اگر میدانید زمین و هر که در آن است از آن کیست؟ میگویند من قل افلا تفکرون به زودی خواهند گفت همه از آن خداست بگو آیا پند نمیگیرید؟ گیرید قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم بگو چه کسی پروردگار آسمان های هفتگانه و پروردگار عرش عظیم است فیقولون لله قل افلا تتقون خواهند گفت همه از آن الله هست بگو آیا از خدا نمی ترسید قل من بيديه ملكوت كل وهو ولا یجار عليه ان تعلمون بگو اگر میدانید چه کسی فرمانروای همه موجودات در دست دارد و او پناه می دهد و کسی در برابر او پناه داده نمیشود سیقولون لله خواهند گفت از آن خداست بگو پس چگونه جادو میشوید بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون چون نیست بلکه حق را برای آنها آوردیم و بیگمان آنان دروغگو هستند وتدخل الله من ولد وما كان معه من اله إذا ل ذهب كل اله بما خلق ولعلی بعضهم علی بعض سبحان الله عما یصفون خداوند هرگز فرزندی برنگزیده است و هیچ معبود دیگری با او نیست اگر چنین بود آنگاه هر معبودی آنچه را که آفریده بود می برد و مسلما بعضی بر بعضی دیگر برتری تری می جستند. خداوند منظه و پاک است از آنچه آنها توصیف می کنند. عالم الغیب و دانای نهان و آشکار است پس برتر است از آنچه شریک او می سازند. قل رب ترینی ما يوعدون. ای پیامبر بگو پروردگارا اگر آنچه را که به آنها وعده داده می شود به من نشان دهی رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. پروردگارا پس مرا در زمره قوم ستمگران قرار مده و أن كما نعدهم لقادرون و یقینا ما تواناییم که آنچه را به آنها بعد میدهیم تو نشان دهیم ف التي احسن السئة نحن أعلم بما ياففون و را بر که آن بهتر است دف کن ما به آنچه توصیف می‌کنند کنند داناترین. و قرر ربی اعوذ بك من هم الشیاطین و بگو پروردگارا من از وسوسه‌های شیطان به تو پناه میبرم و اعوذ بک ربی این یحبرون و پروردگارا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 لعلني اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن وراءهم برزخ الى يوم يبعثون باشد که در آنچه در دنیا ترک و کوتاهی کرده ام کار ای انجام دهم، هرگز چنین نیست، بیگمان این است که او به زبان میگوید، و پشت سر آنها برزخیست تا روزی که برانگیخته شوند. فَإِذَا فا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اِلْيُونَ وَلَا يَتَسَاءَنُونَ از هنگامی که در سور دمیده شود، در آن روز هیچ گونه پیوندهای خیشاوندی در میان آنها نخواهد بود و از حال یک دیگر نپرسند. فمن فقلت و کسانی که ترازوی اعمالشان سنگین شود، پسانانند که رستگار هستند.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 و در جهنم جاودانه خواهند ماند. ذالذخروجوهم النار وهم فیها كالفيون آتش چهره هایشان را میسوزاند و آنها در آن طور روح هستند. الان تکن آیتی توطله ع به آنها گفته می شود مگر آیات من بر شما خوانده نمیشد پس شما آنها را تکذب می کردید قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكم ما قوما ضالين در پاسخ خویند پروردگارا بدبختی ما بر ما چیره شد و ما قومی گمراه بودیم ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا فا ظالمون پروردگارا ما را از این جهنم بیرون کن پس اگر به کف و نافرمانی باز قطعا ستمکار خواهیم بود قال اخفوا فيها ولا تكلمون خداوند میفرماید. در آنگم شوید و با من سخن مگوید اینهو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا یقولون ربنا آمنا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 هم <متحش> پس شما آنها را به مسخره می گرفتید تا یاد مرا فراموشتان کرده و شما به آنها می خندیدید. اینی جزیتوم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون همانا من امروز آنها را به خاطر سبری که کرده اند پاداش دادم اتا آنها کامیاب هستند قال كم لبیتم فی الارض عدد خداوند می‌فرماید شمار چند سال در زمین درنگ کردید قالوا لبثنا او بعض فاسأل گویند یک روز یا قسمتی از یک روز درنگ کرده‌ایم پس از حساب گران بپرس قال <تصفيق> ان لبثتم إلا قلیلا لو أنكم كنتم تعلمون میفرماید آری اگر میدانستید شما جز مقدار اندکی در دنیا درنگ نکردید افحسبتم انما خلقناكم عبثا وان لا ترجعون آیا گمان کردید که ما شما را بیهوده آفریدیم و همانا شما به سوی ما بازگردانده نمیشوید فتعال الله الملك الحق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 ومن يدعو مع الله الهًا آخر لا برهان له به فإنه ما حساب عند رب إنه لا يفلح الكافرون و هرکس که با خداوند معبود دیگری را بخواند مسلما هیچ دلیلی بر آن نخواهد داشت چوز این نیست که حسابش نزد پروردگارش خواهد بود یقینا کافران رستگار نمی شوند و قل رب بغفر ورحم و انت خیر الراحمی. ای پیام بر بگو پروردگارا به و رحم کن و تو بهترین رحم کنندگانی بسم الله الرحمن الرحیم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات وانزلنا فيها آيات بیناتی لعلكم تلکرون این ایست که آن را نازل کرده ایم و احکام آن واجب نموده ایم و در آن آیات روشنی نازل کرده ایم شاید شما پند گیرید از زانیت و از زانی فجلدو كل واحد منهما هما مئت جلده ولا تاكلن بِهِمَا رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين هر یک زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید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 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرك ازدواج نمی کند و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک به ازدواج خود در نمی آبرد و این امر بر مؤمنان حرام شده است والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء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 و بار چون گوید که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان گویان باشد و یدرعو عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله إنه لمن الكالبین و از آن کیفر را دور میکند، به آن که چهار بار خدا را شاهد بگیرد و سوگند یاد کند که او از دروغ گویان است و غضب الله عليها ان كان من و بار پنجم بگوید که خشم خداوند بر او باد اگر شوهرش از راست گویان باشد.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 إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحتبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم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 و اگر فضل خدا و رحمت او در دنیا و آخرت نبود، قطعا در آنچه به آن پرداختید، عذاب بزرگی به شما می رسید. از تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم و تقولون بی افواه کم ما ليس لکن بهی علم و هینا و, هینا و عند الله عظیم زمانی که آن شایع را از زبانی یکدیگر دیگر و بادهان خود سخنی می گفتید که به آن علم و یقین نداشتید و آن را سهل و کوچک می پنداشتید در حالی که آن نزد خدا بسیار بزرگ است و لولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك, سبحانك هذا بهتان عظیم چرا هنگامی که آن را شنیدید نگفتید ما حق نداریم که آن سخن را بر زبان آوریم خداوندا تو منزهی این بهتان بزرگی است یعذکم الله أن تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین خداوند شما را اندرز می میدهد که اگر مؤمن هستید هرگز به چنین کاری باز نگردید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 إن الذین يحبون أن تشيع الفاحشة في الذین آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون بيغمن كسانك دوست دارند زشتی ها در میان مؤمنان شایع شود عذاب دردناکی برای آنها در دنیا و آخرت است و خداوند میداند و شما نمیدانید ولولا فضل الله و و ان الله رؤوف و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نمی بود و اینکه خداوند رؤوف و مهربان است عقوبت سختی شما را در بر می گرفت.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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ذك منكم من أحد أبدا ما ذك منكم من أحد أبدا ولكن الله يذك من يشاء والله سميع عليم ای کسانی که ایمان آوردید از گام‌های شیطان پیروی نکنید و هر کس که از گام‌های شیطان پیروی کند پس بیگمان او به فحشا و منکر فرمان می‌دهد و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نمی‌بود هرگز کسی از شما پاک نمی‌شد ولیکن خداوند هر که را بخواهد پاک می‌کند و خدا شنوای داناست ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم کسانی از میان شما که توانگر و دارای وسعت زندگی هستند نباید سوگند بخورند بر آنکه به آوندان و مستمندان و مهاجران در راه خدا چیزی ندهند آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند آیا دوست نمی دارید که خداوند شما را ببخشد و خداوند آمرزندی مهربان است این الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُفْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بی گمان کسانی که زنان پاک دامن بیخبر خبر مؤمن را متهم به زنا سازند در دنیا و آخرت لعنت شدهاند و عذاب بزرگی برای آنهاست یوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون روزی که هایشان و دستهایشان و پاهایشان به آنچه می کردند بر علیه آنها گواهی میدهند یوم اذی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 الخبيثات للخبثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون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 برای آنها آمرزش الهی و روزی ارزشمندی است یا ایوها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستنسوا و تسلموا علی اهلها زالکم خیر لكم لعلكم تذكرون. ای کسانی که ایمان آبرده اید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 به خداوند می داند آنچه آنچرا آشکار میسازید و آنچرا پنهان میکنید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلک اذكر لهم ان الله خبیر بما يصنعون ای پیامبر به مردان مؤمن بگو چشمهای خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند. و شرمگاهشان را حفظ کنند، این کار برای آنها پاکیزه است، بی گمان خداوند به آنچه انجام میدهند آگاه است، و قل للمؤمنات یغبذن من ابصارهن و یحفظن فروجهن لا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها، وَلَيَضْرِبَنَّ بِخُمرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أو, أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ, أبنائهن أو أبنائهن او ابناء عولتهم أو, او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم او نسائهم, أو نسائهم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 و توبو الى الله جمیعا ایوها المؤمنون لعلكم تفلحون و به زنان مؤمن بگو چشمهای خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند و شرمگاهشان را حفظ کنند و زینت خود را آشکار نکنند جز آنچه از آن کتباً خودش نمایان است و باید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 وَأَنْكِحُ الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْمِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ مردان و زنان مجرد و همسر خود را همسر دهید کنیز غلامان و کنیزانتان که شایسته و نیکوکار هستند اگر فقیر باشند خداوند از فضل خیش آنها را می میکند و خداوند گشایش دهنده آگاه است ول یستعف فی الذین لا یجدون نکاحا حتا یغنیهم الله من فضله مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَبْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا و من یکرهن فإن الله من بعد اكراههن غفور رحیم و کسانی که اسباب و امکانات ازدواج نمییابند باید پاک دامنی پیشه کنند تا خداوند آنان را از فضل خود بینیاز گرداند و کسانی از بردگانتان که خاستار مکاتبه هستند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 بس بیگمان خداوند بعد از اجبار آنها برای آنان آمرزندی مهربان است و لقد انزلنا ایلیکم مبینات و مثلا و مثلا من الذین خلو من قبلكم و موعظت للمتقین و به راستی ما بر شما آیاتی روشن نازل کردیم و مثلی از کسانی که پیش از شما گذشتند و اندرزی برای پرهیزگاران الله نور السماوات والعرض مثل نوری که مشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري يُقد من شجرة مباركة يُقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة يكاد زيتها يضيء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 و صبح و شام در آنها تسبیه او گویند رجال لا تلهیه امتجارت و لا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة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 و ادای زکات قافل نمی کند. آنها از روزی می ترسند که در آن دلها و چشمها دیگرگون می شود. لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله والله یرزق من یشاء بغیر حساب تا خداوند بهتر از آنچه انجام داده اند به آنها پاداش دهد و از فضل خود بر پاداش آنها بیفزاید و خداوند هر کس را که بخواهد می حساب روزی میدهد دهد و الذین کفرو اعمالهم کتراب بطیعتی یحسبوه ما يحسبه الضمآن حتى إذا جاءه لم يجهه شيئا حتى إذا جاءه لم يجهه شيئا ووجد الله عنده فوفاه فيساب والله الحساب و کسانی که کافر شدند اعمالشان همچون سرابی است در بیابانی که انسان تشنه از دور می پندارد. آن را آب میپندارد تا آنکه به آن نزدیک شود چیزی نمی و خدا را نزد خود یابد که حساب او را کامل بدهد و خداوند زود شمار است. أو كظلمات فِي بَحْرِ اللُّجِّهِ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سحاب ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا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 ممکن نیست آن را ببیند و کسی را که خدا نوری برای او خرار نداده است پس هیچ نوری برای او نیست علم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والصير صافت کلون قد علم صلاته والله علیم بما آیا ندیدی که همه آنان که در آسمانها و زمین هستند و پرندگان بال گسترده خدا را تسبیح می گویند. خداوند نماز و تسبیح هر یک از آنها را میداند و خداوند به آنچه انجام می دهند داناست ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير وفرمان روای آسمانها و زمین از آن خداست و بازگشت همه به سوی خداست الم تر أن الله يزجي صحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركما فترى الودع يخرج من خلاله وينزل من السماء وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به مي يشاء.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 یقلب الله اللیل والنهار إن فی ذلك لعبرة لأولی البصارخداوند شب و روز را دگرگون میسازد گمان در این امر برای دیدهوران عبرتی است والله خلق كل دب فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء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 لقد انزلنا آیات مبینات والله یهدی من یشاؤ الى صراط مستقیم براستی ما آیات روشنگری نازل کردیم و خداوند هر کس را که بخواهد به آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين فمنافقان میگویند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 و هنگامی که به سوی خدا و پیام برش فراخاند شوند تا در میانشان داوری کنند، ناگهان گروهی از آنها اعراض می کنند. و, و اگر حق با آنها باشد، گردن نهاده با سرعت به سوی او میآیند، اَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَمِرْتَابُونَ اَمْ يَخَافُونَ اَنْ يَحِیفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ اُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ آیا در دلهایشان است یا تردید و شک دارند؟ یا میترسند خدا و پیام بر آنها ستم کنند؟ بلكه آنها خودشان ستم گرند اینما کان قول <سؤال> المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم بینهم این یقولو سمیحنا و المفلحون سخن مؤمنان هنگامی که به سوی خدا و پیام برش خوانده شوبند تا میان آنها داوری کند فقط این است که میگویند شنیدیم و اطاعت کردیم و اینان همان رستگارانند و من الله ورسوله و یخشى الله و یتقه هم الفائد.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 بیگمان خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است. قل اطیع الله و اطیع الرسول، فإن تولوا فإنما عليهم ما حمل و علیکم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا.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 و بر اخترای پیامبر چیزی جز ابلاغ آشکار نیست. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض لا يستخلفنهم في كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكين لهم دينهم وليمكنن لهم دينهم الذي اغتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أما يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاتقون خداوند به کسانی از شما که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند بعد داده است که قطعاً آنها را در زمین جانشین خواهد کرد همانگونه که کسانی را که پیش از آنها بودند جانشین ساخت و دینشان را که برای آنها پسندیده است برای آنها استوار سازد و یقیناً خوف و ترسشان را به آرامش و امنیت مبدل می‌کند تنها مرا پرستش می‌کنند و چیزی را با من شریک نمی‌سازند و کسانی که بعد از این کافر شوند اینانند که فاسقند و اقیم و اتو الزکات و اطیع الرسول لعلكم ترحمون و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و پیام بر خدا را اطاعت کنید تا شما مورد رحمت قرار گیرید لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم منا ولبئس المصير مبر کسانی که کافر شدند می ما را در زمین به سطوح آورند جایگاهشان آتش است و چه بد بازگشتگاهی است یا ایوها الذین آمنوا لیستعذینکم الذین ملکت و والذین لم یبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم قوافون عليكم بعضكم على بعض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 هنگامی که لباسهایتان را بیرون می‌آورید و بعد از نماز عشاء این سه وقت وقت آورت و خلوت برای شماست بعد از این سه وقت بر شما و بر آنها هیچ گناهی نیست که بدون اجازه وارد چوند آنها بر اطراف و پیرامون شما در رفت و آمدند و بعضی بر بعضی دیگر وارد میشوید. اینگونه خداوند آیات خود را برای شما بیان می کند و خداوند دانای حکیم است. و اذا بلغ الأطفال منکم الحلم فل يستذنوا كما استذن الذین من قبلهم كذلك یبین الله لكم آیاته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 خداوند شنوای داناست لیس علی حرج ولا علی الاحرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت او بيوت امهاتكم او بيوت امهاتكم أو بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم أو بيوت اعمامكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم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 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله و كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا لم يذهبوا حتى يستأذنوا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 به هر کس از آنها که میخواهی اجازه بده و برایشان از خداوند آمرزش بخواه یقینا خداوند آمرزنده مهربان است لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوذا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ أن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ صدا زدن پیام بر خدا را در میان خود همچون صدا زدن یک قرار ندهید یقیناً خداوند کسانی از شما را که پشت سر دیگران پنهان می‌شوند و یکی بعد از دیگری فرار می‌کنند میداند. پس کسانی که با فرمان او مخالفت می‌کنند، باید بترسند از اینکه فتنه ای گریبان آنها را بگیرد یا عذابی دردناک آنها برسد. الا این لله ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیه ويوم يرجعون إلیه فینبئهم بما عملوا والله بكل شيء علیم آگاه باشید آن آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست و یقیناً او آنچه را که شما بر آن هستید می داند و روزی که به سوی او باز گردانده می شوند آنها را به آنچه انجام داده اند آگاه می سازد و خداوند به هر چیزی داناست. بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشلی مهربان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين مذكرا پربرکت و بزرگوار است کسی که فرقان را بر اش نازل کرد تا بین دهنده جهانیان باشد الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراؤه.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 با لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا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 وقال الذين كفرووا إن هذا إلا إفكٌ افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلم و زورات. اکسانی که کافر شدند گفتند این قرآن جز دروغی نیست که خود باعث آست. و گروهی دیگر او را بر این یاری داده اند، راستی آنها ستم و دروغ بزرگی مرتکب شده اند. و قالو الاولین لا علیه و اصیلا. و گفتند این همان افسانه‌های پیشینیان است که آن را رونویسی بیسی کرده و هر صبح و شام بر او املا می شود.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 وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك لولا انزل إليه ملك فيكون معه نذيرا فگفتند این پیام بر چه شده است که غذا میخورد و در بازارها راه میرود چرا فرشتهای بر او نازل نشده است پس همراه او بیم دهنده باشد أو یلقا الیه كنز او تكون له جنة یأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا یا گنجی از آسمان بر او افکنده شود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 پس گمراه شدند آنگونه که نمیتوانند راهی را بیابند. ذبَاكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ أَجْعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ, جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارَ و بزرگوار است کسی که اگر بخواهد برای تو بهتر از این قرار میدهد باغ هایی که نهرها از زیر درختان انجاری است و نیز برایت کاغهایی قرار میدهد بل کذبوو بال ساعه لمن کذب بی ساعت سعیرا اینها همه بهانه است بلکه حقیقت این است که آنها قیامت را تکذیب کرده اند و ما برای کسی که قیامت را تکذیب کند آتش سوزان جهنم فراهم کرده این. اذا رأتهم من مكان بعید سمعون لها تغیظا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 لا تدعو لیوم سبورا واحدا و دعو سبورا كثيرا. به آنها گفته شود امروز یک بار مرگ و نابودی را نخانید و بلکه بسیار و بارها فریادش کنید قل اذالک خیر ام جنة الخلد دلتی وعد المتقون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 كان على ربک هرچه بخواهند در آنجا برایشان محیست جاودانه در آن خواهند ماند این وعده است بر اختی پروردگارد که تحقق آن را از او خواستند و یوم یحشرهم و ما من فيقول اضللتم و روزی که همه آنها و را که به جای خدا پراسیدند گرد آورد پس میفرماید آیا شما این بندگان مرا گمراه کردید یا خودشان راه را گم کرده‌اند قال و سبحانك ما كان ینبغی لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ولكن متعتهم وآباؤهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا گویند تو برای ما شایسته نبود که به جای تو دوستانی برگزینیم ولی کن آنها و پدرانشان را از نعمتها بهرمند نمودی تا اینکه یاد تو را فراموش کردند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 پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه آنها هم قضا می‌خوردند و در بازار ها راه می‌رفتند اما بعضی از شما را وسیله آزمایش بعضی دیگر قرار دادیم. آیا صبر می‌کنید و پروردگار تو بیناست